اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي الذي باركنا حوله لِنُرِيَهُ من آیَاتِنَا اِنَّهُو هو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر پاک و منزه هست خدایی که بند اشرا در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برده تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم چرا که او شنوا و بیناست و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هُدًى لبنی اسرائیل ألا تتخذوا تتخذو من دوني وکیلا ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه‌گاه خود قرار ندهید من حمل لا كان عبدا شفورا. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم او بنده گذاری بود و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن, ولتعلن علوا کبیرا ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد. و برتری جوئی بزرگی خواهید نمود. فإذا فا جاء وعد اولاه بعثنا عليكم عبادا لنا لی بأس شديد فجاسو فجاسو خلال الديار وكان وعدا وعده مفعولا. هنگامی که نخستین وعد فرار گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند حتی برای بدست دست آوردن مجرمان خانه ها را جستجو می کنند و این وعده است قطعی ثم رددنا لكم الكره عليهم وامدناكم باموال و مداد نخوم بیالی اون و, بنین و اکثر نفیرا. سپس شما را بر آنها چیره میکنیم و شما را به وسیله دارایی ها و فرزندانی کمک خواهیم کرده و نفرات شما را بیشتر از دشمن قرار می دهیم.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 اگر نیکی کنید به خودتان نیکی میکنید و اگر بدی کنید باز هم به خود میکنید و هنگامی که وعده دوم فرار آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر میشود و داخل مسجد الاقصی میشوند همان گونه که بار اول وارد شدند و آنچرا زیر سلطه خود میگیرند در هم ميکوبند عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا امید است پروردگارتان به شما رحم کند هرگاه برگردید ما هم باز میگردیم. و جهنم را برای کافران زندان سختی قرار دادیم. این هذا قرآن برای کسانی است که اقوام و به شر المؤمنین کسانی است که اعمال به راهی که استوارترین ترین راه هاست هدایت می و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام میدهند بشارت می دهند که برای آنها پاداش بزرگی است و و آنها که به قیامت ایمان نمی آورند عذاب دردناکی برای آنان آماده ساخته این و يدعو الانسان بالخیر و كان الانسان عجولا انسان بر اثر شتاب زدگی بدی ها را طلب می کند آنگونه که نیکی ها را می طلبد. و انسان همیشه عجول بوده است وَجَعَلَّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَالصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا ما؟ شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن فضل پروردگارتان را بطلبید و به تلاش زندگی برخیزید و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به طور مشخص و آشکار بیان کردیم و كل انسان الذمناه طائره في يعلوقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا و هر انساني اعمالش را برگردانش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون میآوریم. که آن را در برابر خود گشوده میبیند این همان نامه اعمال اوست اقرأ کتابک کفا بی نفسی علیک و به او میگویم کتابت را بخوان بخان است که امروز خود حسابگر خیش باشی من اهدده فا اینما یهددی ومن من ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرت وزر اخرى وما ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد. و ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه که پیامبری مقعوض کرده باشیم و ایده اردنا ان نهلیک قریتا امرنا مترفیها ففسقو فیها فيها فحق عليها القول و هنگامی فحق القول که بخواهیم شهر و دیاری را حلاک کنیم نخست اوامر خود را برای مطرفین و ثروتمندان مست شهوت آنجا بیان می‌داریم سپس هنگامی که به مخالفت برخواستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را به شدت در هم میکوبیم. و وکن اهلکنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی میکردند. آنها را هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست من کان يريد العجلة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل له جهنم يصلها مذموما مدحورا آن کس که تنها زندگی زود گذر دنیا را می تلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم میدهیم. دهیم، سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که نکوهیده و رانده درگاه خداست، و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولائک فاولائک کان سعیهم مشکورا و آن کس که سرای آخرت را بتلبد و برای آن سعی و کوشش کند در حالی که ایمان داشته باشد سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد کلن نمید هاولائی و هاولائی من عطاء ربک و ما کن عطاء ربک هر از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره و کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی من نشده است انظر کیف فضلنا بعضهم هم بعض بع و لا الآخرت أكبر درجات و أكبر ببین چگونه بعضی را در دنیا بهخاطر خاطر تلاششان بر بعضی دیگر برتری بخشی درجات آخرت و برتری هایش از این هم بیشتر است. لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما بخولا هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده که نکوهیده و بی و یاور خواهی نشست وقضى ربك ان تعبدوا الا, تعبدو إلا اياه وبالوالدين إحسانا اما یبلغن عند کلکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما افف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و پرورگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو و خف لهما جناح الذ لن الرحمه وقرب رب رحمهما رب صغيرا و بالهای و خیش را از محبت و لطف در برابر آنان فرودار دار و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإن كان الأوابن غفورا. پروردگار شما از درون دلهایتان آگاه تر است هرگاه صالح باشید و جبران کنید او بازگشت کنندگان را میبخشد و آذی حقه و المسکین و السبیل ولا بذیرا. و حق نزدیکان را بپرداز و همچنین حق مستمند ووامانده در راه را و هرگز اصراف و تبذیر مکن این المبذیرین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا چرا که برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود و این تو عنهم و رحمت رحمدیم می رو بیگ روجه فقلمون فقولمون قم و هرگاه از آنان مستمندان روی برتاوی و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی تا گشایشی در کارت پدید آید و به آنها کمک کنی. با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا هرگز دستت را برگردنت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرو مانی این ان ربک یسطر رزقا لمن یشاء و یقدر انه کان بعباد خبیرا ضیرا به یقین پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده یا تنگ میدارد او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست ولا تقتلوا ولادكم خاشیة ملاق نحن نرزقهم وایاكم ان قتلهم كان خطأا كبیرا و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. ما آنها و شما را روزی میدهیم مسلما کشتن آنها گناه بزرگی است ولا الزنا كان فاحشة وساء و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهیست است ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف فی القتل اینهو کان منصورا و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید جز به حق و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه و حق قصاص قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند چرا که او مورد حمایت است ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. و به مال یتیم جز به بهترین راه نزدیک نشوید تا به سر بلوغ رسد و به عهد خود وفا کنید که از عهد سوال می شود و انقل کایلا اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلک خیر واحسن تاویلا و هنگامی که پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوی درست وزن می کنید این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن چرا كه گوش و چشم و دل همه مسئولند ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا و روی زمین با تکبر راه مرو تو نمیتوانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد كل ذلك كان سيئه عند ربك نكروها همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است. ذالک مما اوحی ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله الهن اخر فتلقى فتلقى في جهنم ممنلوم مدحورا این احکام از حکمت است که پروردگارت به تو وحی فرستاده و هرگز معبودی با خدا قرار مده که در جهنم افکنده می شوی در حالی که سرزنش شده و رانده درگاه خدا خواهی بود افعصفاکم ربکم بی البلین و اتخذ من الملائکت ایناتا اینکم تقولون قولا عظیما آیا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته و خودش دخترانی از فرشتگان برگزیده است شما سخن بزرگ و بسیار زشتی میگویید ولا في هذا وما يزيدهم إلا نفورا ما در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا متذکر شوند ولی گروهی از کوردلان جز بر نفرتشان نمی افزاگد. اولاو کان معه اله کما یقولون اذا لبتغوا الی العرش سبیلا بگو اگر آنچنان که آنها میگویند با او خدایانی بود در این صورت خدایان سعی میکردند راهی به سوی خداوند صاحب عرش پیدا کنند سبحانه وتعالی عما قولون عوا برا او پاك و برتر است از آنچه آنها میگویند بسیار برتر و تر تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان خليما غفورا آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همه تسبیح او میگویند و هر موجودی تسبیح و حمد او میگوید ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید او بردبار و آمرزنده است واذا قرات القرآن جعلنا و وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة فجداً بستورا و هنگامی که قرآن می‌خوانی میان تو و آنها که به آخرت ایمان نمی آورند، ناپیدایی قرار میدهیم. و على قلوبهم أكن تن أيقاه و في آذانهم وقرآ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده و اللو و اللو على أدبارهم نفورا. با بر پوششهایی تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی آنها پشت میکنند و از تو روی برمیگردانند نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم اذ یقول الظالمون ایز یقول الظالمون این تدبعون الا رجلا مسحورا هنگامی که به سخنان تو گوش فرا میدهند ما بهتر می دانیم برای چه گوش فرا دهند و همچنین در آن هنگام که با هم نجوا می کنند آنگاه که ستمگران می گویند شما جز از انسانی که افسون شده پیروی نمی کنی. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ببین چگونه برای تو مثل ها زدند در نتیجه گمراه شدند و نمیتوانند راه حق را پیدا کنند وقالوا قالوا اذا كنا عظاما ورفات ائنا لمبعثون خلقا جديدا و گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و پراکنده ای شدیم، دگربار بار آفرینش ای خواهیم یافت؟ قل كونوا او حدیدا بگو شما سنگ باشید یا آهن او خلقا مما من ما فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يا هر مخلوقي که در نظر شما از آن هم سخت تر است و از حیات و زندگی دورتر میباشد باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد بازگرداند آنها به زودی میگویند: چه کسی ما را باز میگرداند؟ بگو: همان کسی که نخستین بار شما را آفرید. آنان سر خود را از روی تعجب و انکار به سوی تو خم می کنند و میگویند در چه زمانی خواهد بود؟ بگو: شاید نزدیک باشد. همان روز که شما را از قبرهایتان فرا میخواند شما هم اجابت می کنید در حالی که حمد او را می گویید می پندارید تنها مدت کوتاهی در جهان برزخ درنگ کرده ای وقل قل لعبادی یقولون لدیه احسن این الشیطان ینزغ بینهم این الشیطان کان لیلانسان عدوا مبینه به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد چرا که شیطان به وسیله سخنان ناموزون میان آنها فتنه و فساد میکند همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است ربكم اعلم بكم إن یشأ یرحمكم او ن یشأ یعذبكم وما ارسلناك علیهم وكیلا پروردگار شما از نیات و اعمال شما آگاهتر است اگر بخواهد و شایسته بداند شما را مشمول رحمت خود میسازد و اگر بخواهد مجازات می کند و ما تو را به عنوان مأمور بر آنان نفرستادیم که آنان را مجبور به ایمان کنیم و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتينا داود زبورا پروردگار تو از حال همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند آگاه است و اگر تو را بر دیگران برتری دادیم به خاطر شایستگی توست ما بعضی از پیام بران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور بخشیدیم قول ادعو الذین زعمتم من دونه فلا یملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید آنها نه میتوانند مشكلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. اولائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا کساني راكه آنان ميخوانند خودشان وسيله اي برای تقرب به پروردگارشان می جویند وسیله ای هرچه نزدیک تر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است و این من قرية الا نحن مهلکوها قبل يوم القیامت او معذبوها, او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلك في الكتاب مسکورا هیچ شهر آبادی نیست مگر اینکه آن را پیش از روز قیامت حلاج میکنیم یا اگر گناهکارند به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت این در کتاب الهی لوه محفوظ ثبت است و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمودا ناقه مبطره فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات را بفرستیم جز اینکه پیشینیان که همین درخواست ها را داشتند و با ایشان هماهنگ بودند آن را تکذیب کردند از جمله ما به قوم سمود ناقه دادیم که که روشنگر بود اما بر آن ستم کردند و ناقه را كشتند ما معجزات را فقط برای بین دادن و اتمام حجت میفرستیم واذ قلنا لك ان ربک احاط بالناس وما جعلن الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا یاد آبر زمانی را که به تو پروردگارت احاته کامل به مردم دارد و از وضعشان کاملا آگاه است و ما آن رؤیایی را که به تونشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود همچنین شجره ملعونه درخت نفرین شده را که در قرآن ذکر کرده این ما آنها را بین داده و انذار می کنیم اما جز تقیان عظیم چیزی برانها نمی افسادد و اید قلن للملائکت اسجدو لی آدم الا ابلیس الا ابلیس قال اسجدو لمن خلقت طینا به یاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید آنها همگی گی سجده کردن جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از خاک آفریده قال قالا رأیت الذی هذن لذی کرمت علی لئین افخرتن لا یوم القیامت لأحتنکن, لأحتنکن لذریته الا قلیلا سپس گفت، به من بگو این کسی را که بر من برتری داده ای به چه دلیل بوده است؟ اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری، همه فرزندانش را جز اده کمی گمراه و ریشکن خواهم ساخت. قال اذهب فمن تَبِعَكَ منهم فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ فَإِنَّ فا جَهَنَّمَ جزاؤكم جَزَاءً مَوْفُورًا فرمود برو هر کس از آنان از تو تبعیت کند جهنم کیفر شماست است فراوان. واستبدد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورات هر کدام از آنها را میتوانی با صدايت تحريك كن و لشکر سواره و پیاد را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنان را با ها سرگرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده به آنها نمی دهد. این عبادی لیس لک علیهم سلطان و اما بدان تو هرگز سلطه ای بربندگان من نخواهی یافت و آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمیشوند. همینقدر همین قدر کافیست که پروردگارت حافظ آنها باشد ربكم الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُو مِنْ فضله. حرور گارتن کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در میآورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إیاه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد جز او تمام کسانی را که میخوانید فراموش میكنید اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد روی میگردانید و انسان بسیار ناسپاس است بكم جانب البر او حاصبا ثم لا تجد لكم آیا از این ایمن هستید که در خشکی با یک زلزله شدید؟ شما را در زمین فرو ببرد یا توفانی از سنگ ریزه بر شما بفرستد سپس حافظ و یاوری برای خود نیابید ام امینتم این یعیدکم فی هتارت اخرى فیرسل فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرق کم بما کفرتم ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا یا این ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند و تندباد باد ای بر شما بفرستد و شما را بخاطر کفرتان قرغ کند سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید ولقد لقد کرمنا ذنی آدم و حملناهم في البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و, فضلناهم و فضلناهم على كثير من من ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راه راهوار حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده‌ایم برتری بخشیدیم كل ولا بیاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان میخوانیم کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را با شادی و سرور می و به قدر رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمی شود و من کان فی فهو فی الاخره اعمى و اول سبیلا اما کسی که در این جهان از دیدن چهره حق نابینا بوده است در آخرت نیز نابینا و گمراه است و این کان لیفتنونک عن الذی او حینا الیک لتفتری علینا غیره واذا اتخذونک خلیلا نزدیک بود آنها را با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کرده این بفریبند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و در آن صورت تو را به دوستی خود برگزینند. و لولا ثبتناك لقد کت تركن و اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم نزدیک بود اندکی به آنان تمایل كنی اذا لأذقناك ضعف الحا وعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا اگر چنین میكردی ما دو برابر مجازات مشرکان در زندگی دنیا و دو برابر مجازات آنها را بعد از مرگ به تو میچشاندیم سپس در برابر ما یا بری برای خود نمییافتی و انکادوا لاستفذونک من الأرض لیخرجوک منها واذا لا يلبتون خلافك الا قليلا و نزدیک بود با نیرنگ و توطعه تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرونت کنند و هرگاه چنین میکردند گرفتار مجازات سخت الهی شده و پس از تو جز مدت کمی باقی نمی ماندند سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا این سنت ما در مورد پیامبران است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت اقیم الصلاه لدووق الشمس الى غسق الليل الفجر ان قران الفجر كان نماز را از زوال خورشید هنگام ظهر تا نهایت تاریکی شب نیمه شب بر پادار. و همچنین قرآن فجر نماز صبح را چرا که قرآن فجر مشهود فرشتگان شب و روز است و من اللیل فداها الجلبه لنافله لك عسى ان يدعك ربك نقما محمودا و پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان این یک وظیفه اضافی برای توست امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد زد و قر ربی ادخلی مدخل صدق و اخرجنی صدق و جعلی, و جعلی من لدن که سلطان نصیرا و بگو پروردگارا مرا در هر کار با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار ده و قل الحق و زهق الباطل این الباطل کان و بگو حق آمد و باطل نابود شد یقیناً باطل نابود شدنیست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و للمؤمنین و لا يزید الظالمین و لا يزید إلا خسارا و از قرآن آنکه شفاء و رحمت است برای مؤمنان نازل میکنیم، و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افسا گردد على الانسان اعرض ونا ابي جانبه واذا مسه الشر كان ياوسا هنگامی که به انسان نعمت می‌بخشیم از حق روی میگرداند و متکبران دور می‌شود و هنگامی که کمترین بدی به او میرسد از همه چیز مایوس می‌گردد قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا بگو هرکس طبق روش و خلق و خوی خود عمل میکند و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است بهتر میشناسد و يسالونك عن الروح وَنُرِيدُ رُوحًا مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا و از تو درباره روح سوال میکنند بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا و اگر بخواهیم آنچرا بر تو وحی فرستاد ایم از تو میگیریم سپس کسی را نمیابی که در برابر ما از تو دفاع کند اِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّك كان كبيرا مگر رحمت پروردگارت که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است قل ان اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هرا بگو اگر انسانها و پریان جن و عنز اتفاق كنند که همانند این قرآن را بیاورند همانند آن را نخواهند آورد هرچند یكدیگر را در این كار کمک كنند وَلَقَدْ صَرْغَفْنَانِ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَذَلٍ فَأَبَا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا. ما در این قرآن برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم اما بیشتر مردم جز انکار داشتند و قالون نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این سرزمین خشک و سوزان برای ما خارج سازی او تکون لکه جنت من خیلی اون وین بیم فتو فجر انهرو فدو فجر انها از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در لابلای جاری کنی. او تسقط السماء كما زعمت علينا كفاً او تاتي بالله والملائكه قبيله یا قطعات سنگ های آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرو داری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحانه ربي هل كنت الا بشرا رسولا يا برايته خانه پر نقش و نگار از طلا باشد یا به آسمان بالا روی، حتی اگر به آسمان روی، ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامهای بر ما فرود آوری که آن را بخانیم. بگو، منزه هست پروردگارم از این سخنان بی معنی، مگر من جز انسانی فرستادی خدا هستم، و ما منعن ناس این یؤمنو اجاهم الهدى الا, الا ان قالو ابعث الله بشرا رسولا تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند این بود که از روی نادانی و بیخبری گفتند آیا یا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنن انی لنزلنا لنزلنا علیهم من السماء ملکر بگو اگر در روی زمین فرشتگانی زندگی میکردند و با آرامش گام برمی‌داشتند ما فرشته‌ای را به عنوان رسول بر آنها می‌فرستادیم چرا که رهنمای هر گروهی باید از جنس خودشان باشد قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم ان هو کان عباده بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گباه باشد چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست و من یهد الله فهو المهدد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت على وجوهیم عمیا و مأواهم جهنم لم ما خبت خضت زدناهم هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را به خاطر اعمالش گمراه سازد هادیان و سرپرستانی غیر خدا برای او نخواهی یافت و روز قیامت آنها را بر صورت هایشان مشهور می کنیم در حالی که نابینا و گنگ و کرند جایگاهشان دوزخ است هر زمان آتش آن فرو نشیند شعله تازعی بر آنان می ذلک ذالک جزاؤهم بی انهم کفروا و قالوا و قالوا اِذا كُنَّا عِظامَهُ وَرُفاتَنَ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَ خَلقَ جَديدةٍ. این کیف آنهاست است؟ به خاطر اینکه نسبت به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و خاکهای پراکنده ای شدیم، بار دیگر؟ آفرینش تازه ای خواهیم یافت. اولم یارو ان الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أي يخلق من لهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأذى الظالمون إلا كفورا. آیا نمیدارند؟ خدایی که آسمانها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرامدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده اما ظالمان جز کفر و انکار را نیستند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا ل أمسكتم خشیة الانفاق وكان الانسان قطورا بگو اگر شما مالك خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک میکردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است و لقد آتينا موسى تسع آیات بینات فسأل بنی اسرائیل افجاءهم فقال له فرعون اینی لاغنک يا موسى مسحورا ما به موسى نه مؤجز روشن داریم پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسا به سراغ آنها آمد چگونه بودند؟ فرعون به او گفت ای موسا گمان می کنم تو دیوانه یا ساهری؟ قال لقد عنیمت ما انزل هاولائی ها الا رب السماوات والارض بصائر و انی و لأظنك يا فرعون موسا گفت تو میدانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی خواهی شد فاراد ان من الارض فاغرقناه ومن معه پس فرعون تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ریشه کن سازد ولی ما او و تمام کسانی را که با او بودند غرق کردیم وقلنا من بعده لبنی إسرائیل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین مصر و شام ساکن شوید اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شمارا دست جمعی به آن دادگاه عدل می آبریم و وبالحق انزل و وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا و و وما را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را جز به عنوان بشارت دهنده و بین دهنده نفرستادیم وقرآنا قرآن فرقناه لتقراه علناس علامکفی و نذل و نذل تنزیل. و قرآنی که آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم. والامنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا بگو خواه به ان ایمان بیاورید و خواه ایمان نیاورید کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که این آیات بر آنان خوانده می شود سجده کنان به خاک می افتند و میگویند سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و میگویند منزه است پروردگار ما که وعده هایش به یقین انجام شدن است وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ و وَيَزِيدُهُمْ خشوعا آنها بی اختیار به زمین می افتند و گریه می کنند و تلاوت این آیات همواره بر خشوعشان می افزایند اودع الله الرحمن او ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجاروا صلاتك ولا تخافث بها وبتغ بین ذلك سميلا بگو الله را بخانید یا رحمان را هر کدام را بخانید ذات پاکش یکی است و برای او بهترین نام هاست و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان و در میان آن دو راهی معتدل انتخاب کن. و قلِل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل و بگو و بگو ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد و نه به خاطر ضعف و ذلت حامی و سرپرستی برای اوست و او را بسیار بزرگ به شما